چیزی شده؟ خوابم نمیبره چی کار کنم؟ سعی بخوابی کن به خوابی بشن این این راه هر مرغ محتا میخواند ابری در اتاقم میگرید گلهای چشم پشیمانی میشکافت در تابوت پنجرم پیکر مشرق میلولد مغرب جان می میمیرد. گیاه نارنجی خورش در مرداب اتاقم میروید کم کم بیدارم نپنداری در خواب سایه شاخه بشکسته آهسته خوابم کرد اکنون دارم میشنوم آهنگ مرغ محتاب و گلهای پشیمانی را پرپر می کنم سلام من آرش هستم اینجا رادیو هجده بنفش است جایی که هم هجده است و از قرار بنفشم هست. این رادیو برای پر کردن نیم ساعت‌های از شماست که بیدرنگ میآیند و با عشوه می روند و هیچگاه باز نخواهند گشت. مانند دخترکان رقصانی که موهای فردارشان سیلی میزنند به صورت آسمان و دامنشان بد جوری سبززار را عاشق می کنند. آرام میآیم و شاید آرام بروم. ولی در طول بودنم هیچ روحی را آرام رها نمی کنم و به انتظار فریادی دست جمعی می تا یک روز پای کامپیوترها یا شاید کنار هدست پلیرها از همراهانم سر بگیرد. اینجا رادیو هجده بنفش است و شما در حال شنیدن قسمت ششم از فصل کم آن هستید. این اپیزود تقدیم به روجین که روی قولش موند و تا آخرین روز ایران بودنش در کنار هجده بنفش بود و ما رو تنها نزاشت تقدیم به هماروستای عزیز که امروز از دنیا رفت و تقدیم به نیمه شب‌های قشنگ خیابون ولی هست مخصوصا اون قسمت از پارک به تجریشش مهربان باشیم و شاد مریم چشمات رو وا کن زنی بالا کن که عمر خوشی چود حواسفیت وقت اون رسید ببین به سارو قوینا زنی مریم جون مریم چشمات رو وا منو صدا بشین روونه las mule shule be shule be radu uruzha voy pos خواب، بیداری، بیخوابی، کمخوابی، پرخوابی، رویا، کابوس، انزومنیا اختلال خواب و شببیداری ها. اینها کلید واژگانی هستند برای خواب عزیز. اصولا آدمی زاده اینطور است که قدر چیزهایی را نمیداند که بهشان عادت کرده است. مثلا عادت کرده است که نفس بکشد یا عادت کرده است که پل بزند یا مثلا به خوبی کردن مادرش عادت کرده است. ولی، این عادت کردن های لعنتی انسان را از لذت بردن باز می‌دارد. بی بیشک این اپیزود بسیار تلخ است. این اپیزود در مورد شب ها و بیخابی های یکی از همین آدمی زاده هاست. یکی که شاید شما باشید و یا او باشد و یا حتی من باشد ما به خوابیدن عادت کردیم ولی زمانی که اختلالات خواب به سراغ ما آنجاست که این عادت قدیمی چقدر مهم است بیشک ما بسیار بدهکاریم به شبهایی که ماهیت اصلیشان را فراموش کردیم و نخوابیدیم و به طور قطع خوابها هم بسیار بدهکارند به ماهایی که به سراغ ما نیامدند و با نبودنشان غمگین و خسته و مرودمان کردند قول هورویت راننده تاکسی در ناتور دشت وقتی هلدون رو جلوی باشگاهرنی پیاده میکرد. ببینم اگه تو ماهی باشی، مادر طبیعت از تو مراقبت نمیکنه؟ حتماً میکنه، مگه اینطور نیست؟ خیال نکن وقتی زمستون میاد، ماهیام ها اصلا از همان اونفوان کودکی هم از نوشتن خاطرات بیزار. یادتان می آید به همون مشک می که خاطراتتان را بنویسید تا نویشتنتان قوی شود. اصلا با یک گارد فولادی می ایستم جلوی آن کسی که این نظریه را داد که اگر خاطره بنویسی نویشتنت بهتر می شود. اصلا حالا بیا یا یک سری مطالب روزانه را بنویسی و بعضا داغدلت دلت را هم تازه تر کنید. که حالا که چه مثلا؟ ولی الان میخوام از خاطرات اوریجینال شببیداری هایم برایتان پرده برداری کنم و بگویم خاطرات روزانه چنان توفیر اساسی با خاطرات شببیداری ها ندارم ولی خب دیگر چه کنیم که ما باید قرض هایمان را به این شب که به جای خوابیدن بیدارشان نگه داشتیم بدهیم دیگر. دین خود را ادا کنیم به این شبهایی که ماهیت اصلیشان را با یک دهنکجی بسیار فراخ زیر سوال بردیم. پس می نویسم از شب هایم و خاطراتشان را تا جایی که در توانم باشد برای تان نقل می کنم. باشد که دینهای من را ادا کنیم به همه آنهایی که خواسته و نخواسته آزارشان دادیم ولو اینکه آنها چیزی نباشند جز خوابیدن و شب و آرامش All my nights felt like days, summer's light in every way, just blink eye I used to be Someone happy All is fake Let me come in I feel sick Give me your own From the shadow To the sun Only one step And you burn. Don't stay too high I used to be Someone happy انسانها در طول تاریخ بیمنطق بودن چرا وقتی بچه های گرسته توی هند زندگی میکنن مردم رو میریزن دور چرا وقتی به اکسیژن نیاز هست رو قطع میکنن و اینکه چرا جدول زمانبندی اوتوبوس ها رو درست کردن وقتی هیچ کدومشون سر وقت نمیان مکس با دانشمند مورد علاقهش همعقیده بود که تنها دو چیز تمومی نداره کائنات و حماقت انسان شبیداری های من را یاد ترابیس بیکل می اندازد جوانی که به خاطر بیخوابی مزمنش پناه برده بود به تاکسی راندن شبانه شبیداری های من را بدجور به یاد ترابیس بیکل می‌اندازد. مردی که در طول این شبیداری ها چندین دوره را می‌گذراند و در مواجهه با انسان‌ها تحولات فراوانی می آبد او بیتفاوتی مزمن را تجربه می کند او تبدیل به یک آدم افراتی می شود و در آخر او می شود یک نجات بخش واقعی ولی شبیداری‌هایم هایم مرا بی‌اندازه یاد تراوی سپیکر می اندازند. من نیز سالها بی‌خواب بودم. آن هم از نوع مزمنش. من هم در تمام این سالها به تاکسی های فراوانی پناه بردم و افراد بسیاری سوار تاکسی شبانه من شدند و البته در تمام این شبیداری ها فهمیدم حتی اگر نجات بخش باشم هم یک راننده تاکسی بیش نیستم. و آنها هم مساور هستند و به مسافرها نباید دل بست بسیار خشمگینم از اینکه که نخوابیدم و کاش میخوابیدم و خواب خودم را میدیدم به قول دکتر تلایی خشمها ها نوعی واکنشند به دردها، ها شبیداری های هم مرا بد جوری یاد تراوی میاندازد نشستم جلو آینه و به خودم میگویم داری با من حرف میزنی؟ تو داری با من حرف میزنی؟ حالا ما با هم حرف You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then well, who the hell else are you talking You talking to me? what well, I'm the only one. me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space, I just walked in to find you here without that look upon your face, I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key, if I'd have known for just one second you'd be. بابه ترسالودیست، سالهاست میبینمش توی یک صحرای سفید، شاید هم صحرا نیست اصلا من چه بدانم؟ من که جز سفیدی مطلق و صدای وح مالود زنی یا حتی مردی در آن چیزی نمیشنوم آن پیرمرده یا شاید هم پیره زنه همان که صدایش میلرزد اصلا شاید پیر نیست، شاید سردش است پس چرا من سردم نیست؟ و شاید هم او جلوتر از من می داند که باید بترسد. شبیه همان مرده که نشسته بود و پوزخن میزد و آن جوانها را فرا می با آن قطقا. اول فیلم پیچ اشتباهی را می گویم. و من به امید نجات از آن سفیدی بی و ته که هر لحظه مرا از دوست داشتنی های زندگیم دور می کند به این تسلسل باطل پناه می برم. آن صدای لرزان توی آن خواب همیشه گیهایم هم همیشه ها میگوید. به اعماق نور که رسیدی سمت راستت راه است. از آن قفلت نکنی و من هر بار یادم می رود که نباید به آن راه باریک بروم زیرا آن راه باریک سرآغاز آن سفیدی بی سر و ته هست افسوس وقتی تازه به سمت آن سفیدی مطلق وکیوم می شدم یادم می آید حرفهای آن پیر صدای لرزان را شبیداری های لعنتی اصولا یک سری خوبی ها هم دارد. شبیداری که تنها غم و اندوه و درد و بی حوصلگی با شب تنهایی ها و شب بیکاری ها نیست. شبیداری ها می توانند خوبی هم داشته باشند. حالا مثلا گمان نبرید که میخواهم از جزوه ازیستانسیالیسم علم و که جدید آقای آشنا که جدیداً بعد ده 10 سال دوباره در همین شبیداری ها خواندمش حرف بزنم یا بیایم فرق فمینیسم و نسل سوم را برایتان بگویم. یا مثلا بیایم با شوپنهاور را به سیویل پارتی نیچه دعوت کنم. نخیر، میخواهم از چیزهای کوچک و بزن معمولی حرف بزنم که بسیار مهمتر از موارد فوق است. همین چیزهای معمولی که زیبایی های این شبیداری ها را میسازند زیبایی هایی که کارکرد دوگانه ای دارند. مثل قوغنوز که در شاهنامه هم خوب است و هم بد. اینها هم میتوانند آدمی را به ورته غم و اندوهها عش بکشند و هم میتوانند او را شاد و قوی و رقصالود کنند. آدمی در این شببیداری ها هی یاد گذشتهش میافتد یا آدم هایی که آمدن رو رفتن. هیچ چیزی یادش ادش میآید همینجاست که یکو می توانت برود در لاک غمبادکی و اشکالو و با دلپیچه ای عجیب ناشی از قورت دادن اشک و آب دماخایش از خواب بپرد و هم می تواند به خودش و دیگران یادآوری کند که دوستی ها و رفاقت ها تاریخ مصرف دارند و باید زندگیش را مبتنی بر بی‌انتظاری بسازد و بعضا حکم ابطال بزند بر مانیفستهای های ریز و دهش که مباد و در کاسه لب گل سرخ جهاز سلگوم به نظر بنده این مورد بسیار بسیار مهمتر از اگزیستانسیالیسم آمیخته با سانتیمانتال، با مطیک بنفش سرخابی و سیبیل نیچه ای و سی بایفونیس که بعضا باید اسمش رو بگذاریم آی پوز و ایفر و ایگر. اصلا باید فلسفه حیات رو بر همین اساس پایه بگذاریم از سر نو، فلسفه‌ای که خود مبتنی بر اصل بی‌انتظاری صرف است و بسیار هم معمولی است و موهای فرش رو هم از هرس دلش صاف کرد و اگر ترس قهراش نبود باز می‌رفت و استه می‌زدش. اینطوری آدم قوی شود. قوی می شود در دلش عشق نمی رزد و غم نمی خواهد. این همان زیبایی بزن کوچکی بود که شب بیداری ها به آدمی می داد. شبها بیدارم و تا صبح به هیچ فکر می کنم. به گمانم عاشق هیچ شدم. هیچ مرا می فهمد. هیچ مرا می خاند. بدون هیچ توقعی هیچ مرا می خواهد. به گمانم هیچ عاشقم شده. آنقدر عاشق که هیچ شده. من عاشق هیچ شدم و هیچ عاشقم شده. افسوس هیچ ندارم تا نثار هیچ کنم. is not enough یکی از عادات قدیمی بنده نشستن دم در جنوبی خانه است. آنها نصف شب ها خیابان پر رفت آمدی می تواند باشد یعنی پتانسیلش را دارد. این کار را از خیلی وقت پیشترها میکردم. روی پله های سنگی جلوی خانه می نشستم و شبگردی های آدم ها را نگاه میکردم. گاهی هم یک چای و یا یک بهمن شب نشینی من را به زیافت وسطما شدنی تبدیل می شبیه شب این پیرزن پیر مرد های که مینشینن دم خانهاششان نگاه میکنند به آدم آدم ها رد می شوند و من نگاهشان میکنم. بعضی ها فقط صدای سیستم صوتی ماشینشان میآید که گاهی من خواننده را می شنام و شعر بردم و باقی شعر را تا جایی که بشود برای خودم تکرار میکنم یا حتی اگر در گوشی باشد پخشش میکن کلبلی ماند که پارسال مرد هم خیلی اوقات میآمد و سلام میکرد. پیرمرد خوبی بود. همه جای کوچه را برق میانداخت. مهربان بود. یک شاره سبز هم دور گردنش داشت. سپورجیده گفت که کلبلی را زیر گرفتن. نامرتا ولش کردند و رفتند. چطور درشان آمد آدمی را ول کنند و بروند؟ آن هم کسی مثل کلبلی که آنقدر دست و دل و مهربان بود. همیشه ها به همه سیگار تعارف میکرد. دخترش انگار مهندس بود. کلبلی میگفت آن زمانها رفته تهرون و به همه گفته که باباشم مرده همانجا هم هر شده. ولی کلبلی از دختر از یک نوه داشت سیزده یا چهارده ساله که عاشق کلبلی بود. کلبلی میگفت ساغرم نوش رو میگفت. اصلا از من خجارت نمیکشد. می من که دزدی و هیزی و گدایی نکردم. سپورها هم بنده خدایند خدا. این شبنشنی های دم در خانه آدم های خوبی را به من نشان داد. آدم های که شب گرد بودند. مثل خودم. یک خانم و آقای دکتری بودند که آن اولهای محل خانشان بود هر شب با یک دست گرم شیک که ورزشی و البته خوش رنگی آمدن و از جوره خانمان می گذشتن. آقای دکتر متخصص چشم بود و خانماش انگار درس نخوانده بود ولی به جد آشق هم بودن چند پیش ماجرا کردن به لندن، پیش پسر و عروسش. آنها هم های مهربانی بودن. هر شب کلی دور می‌زدن تا از روی خانه ما رد شود و من رو ببینن. چند وقتی که سخت مریض بودم، یک روز بعد از ذوری آمدن در خانه و از مادرم جویای حالم شدن. وقتی فهمیدن که مریضم، هر چند روز یک بار زنگ زدن و حالم را از مادرم پرسیده. خیلی های دیگر هم بودن، کسانی که دلشون گرم بود به شب‌هاشون که قرار است بیایند شب گردی. از همیان شب ها حتی یک نفر هم نماند. فقط من ماندم و این در خانه و چای و بهمن و شبگردهای جدید اتوبان رود خانه‌ای است که مرا از تو دور می‌کند آب که از سر ما گذشت اما ماهی ها غرق نخواهند شد تنها در کنار اتوبان می‌ایستند و برای شیشه‌های بالا کشیده دست تکان می‌دهند تا از سر ما یخ بزنند و روی آب بیایند تنها سنگ ها هستند که برای همیشه تهنشین خواهند شد پای نوشت برای دلم اگر هنوز زنده باشد یادم نمیآید آن بار که کرتاش شد زنده ماند یا نه شاید یکی از توی سطل زباله پیداش کرد و دلش برایش نرم شده و بعدها هم بزرگش کرده همیشه ها می خواستم دلم را در رخت سفید عروسی ببینم دلکم دخترکم شاید هم بهش اکسیژن نرسیده و مرده بیچاره دلم من مدر بدی بودم و یا دنیا زیادی متبرم درد و عذاب بود در هر حال او قربانی ما شد برای دلم اگر هنوز زنده باشد تا نماز مادرم را از لای جانمازش بر می دارم، سرم می کنم و آرام شب بند در غربی خانه را باز می کنم اتاقم همینجا بود نگاه می کنم به جبه تقسیم اصلی خانه و یاد شبهایی که تا صبح با آن سیم بلند 24 متری که دوزدکی از بالای سر او بر می داشتم و با آن کارتهای آفتاب رنگی به نزمی آمدن می افتن. شاید بخاطر همون شبیداری شب ها بود که حالا یاد شبهایی میفتم که بی‌وقفه می نوشتم و تا شب بعد از شغل نظراتی را داشتم که برایم حکم انرژی رو داشتم. شاید به خاطر همون شب بیداری ها بود که حالا بیخواب شدم. یادم نیست چند سال پیشتر از این بود. ولی به گمانم باز هم شب بود با آن رادیوی قدیمی و سیاه تا صبح موش ممنوعه را رو و با سیخ کباب و پنجره و کمی آدم ساعصاب مانده برایش تغییر کننده شاید به خاطر همون شببیداری بود که حالا بیخوااب شدم. یاد شبهای با فنهای سی پی افتادم و آن بهمن زمستانی و سرد و دریچه کوله رو شبانه های شاملوی جانم که کتابش را به چه مصیبتی خریدم از انتشارات صد که نمیدانم چه کسانی مغازش را با آتش کشیده شاید خاطر همون شب بیداری ها بود که حالا بیخواب شدم یادش بخیر تا صبح به عشق سمت خانی زیر پتو با آن چرا قوه قدیمی قرمز و اولوز و حلوهای نه نکلاغ و حسنک کف و ماهی سیاه شده چه سفایی میکرده شاید به خاطر همه ها بود که حالا بیخواب شدم. نمیدانم سهراب و سمتخانی بود یا عصیان فروغ که مرا را اینچنین عاشق ماهی شدن کرد فقط این را میدانم که اسمم را دوست نداشتم و اینچنین بود که فتانا متولد شد و ماهی کوچولو و از کنارش روش کرد که خواست به اقیانوس برود ولی خودشم عاقبتش را نمی‌دونم شاید به خاطر همون شب بیداری ها بود که حالا بی خواب شدم حالا هم معلوم نیست چند سال دیگر باقی تا شب بیداری هایم را که حالا شدن شب بیکاری ها نوازش خواهم کرد اصلا شاید سالی در کار نباشم حرف من حرف ثانیه‌ای هاییست که کاش میخوابیدم و خواب خودم را می‌دیدم چادر نماز مادرم را اصلای جان نمازش برمی‌دارم سلام می‌کنم آرام شب بند در قبی خانه را باز می‌کنم یکی از عادت قدیمی هم نگاه به خشک صبحم. حالا نمیدانم چشمان من لوز شده است یه آفتاب این روزها ها آفتاب شاید به خاطر همون شببیداری ها بود که حالا بیخوابی عادتم شده است. شب به روی شیشه های تار مینشستارام چون خاکستری تبدار باد نقش سایه ها را در حیات خانه هردم زیر و روم میکرد پیچ نیلوفر چو دردی موج میزد بر سر دیوار در میان کاج ها جادوگر محتاب با چراغ بیفروغش فروغش. میخزید آرام گویی او در گور ظلمت روح سرگردان خود را جستجو کرد من خزیدم در دل بستر خست از تشویش و خاموشی گفتم ای خواب ای سرم گشت کلید باق‌های سبز چشمهایت برکه تاری که های آرامش کول بارت را به روی کودک گریان من بکشا و ببر با خود مرا به سرزمین صورتی رنگ پریهای فرابوشی این بود 28 هجته بنفش یعنی اپیزود ششم از فصل ایکم و اولین هجته بنفش پاییزی سال 1394 هجته خوشیدی توی این قسمت در کنار شعرهایی که از فروغ و صحراب براتون انتخاب کرده بودیم شعرهایی رو خوندیم از مهران علیزاده و سید مهدی بونسدی و البته آهنگهای جان مریم، اندلس سانگ از آرون، آی بیل سروائب از گاینور و ویز هولدینگ ناسینگ از ویلیام مکداول رو با هم شنیدیم شاد باشید و ارغوانی و تم